یک هفته شراب کرده باشی پیوست، هن تا ندهی به روز آدینه زدست، در مذهب ما شنبه و آدینه یکیست، جبار پرست، باش نه روز پرست. یا رب تو کریمی یا کریمی کرم است، آسیز چه رو برون باغ ارم است، با تاعتم ار به نیست کرم، با معصیتم اگر ببخشی کرم است. پشتار که روزگاه شورنگی است، ایمن منشین که تیغ دوران تیز است، در گام تو گر زمان لوزینه نهد، زنهار فرومه برک زهرامی زه است. است. که گلی و لالزاری بوده است، از سرخی خون شهریاری بوده است، هر برگه بنفش که از زمین خالی است که بر رخ نگاری بوده است.